وعلى رسول الله صلى الله عليه سلم بی درس ما شما درباره قربانی و احکام ازو از دیدگاه دین مقدس اسلام ببینین قربانی اصلا دو قسم است قربانی دو قسم است قسم اول قربانی هست که انسان خودش خود در راه خدای عزوجل قربان بکنه آماده قربانی اولاد خود در راه خدا باشه و این قربانی است که حضرت ابراهیم علیه و اسمایل علیه سلام خدا قربان کردن ابراهیم علیه با وجود از که خودش در سن پیری خداوند اندرش فرزند داد وقتی که خدای عزوجل خواست دیر امتحان بکنه که آیا تو مسلمان آماده هستی که در راه ما خدا قربان بکنی ابراهیم علیه سلام برش گفت خاسته های خداوند لبه گفت و آماده قربانی شد به انسان مسلمان اگر می خواهد که مسلمان حقیقی باشه در وقتی که ضرورت میشه که خدا و مال خدا در راه خداوند قربان بکنه باید اینجا آمادگی خدا داشته باشه ان الله شْتَرَ من المؤمنین اموال انفوسهم و اموالهم به آن نلاهمول چنّا خداوند از مسلمان دو چیز خریده نفسه اناتومی آناتومی و مال چرا؟ به خاطر که در مقابل ازیک خداوند برش جنّت میته پس وقتی که انسان معامله میکنه خدا قربان میکنه در راه خداوند اینجوری باز چیکت یا مال خدا در راه خداوند مصرف کرد؟ این چیز که خداوند برازی جنت رمیته اینال قربانی اساسی و اصلی که است که خود انسان آماده باشه که خدا اولاد خدا مال خدا در راه خداوند قربان بکنه و ابراهیم علیه سلام آماده شد که فرزند خدا ببره به قربانگاه خداوند گفته زرحش گفته به چشم خدایا اما یک نفر به خاطر رضایت خداوند بسیار کارای عادی رو نمیکن اسمایل علیه سلام یک نوجوان بود برنامه های زیاد در زندگی خود داشت من جوان هستم در آینده ازواج می‌کنم خانه داشته باشم تحصیل باید داشته باشم زندگیم خوب باشه ولی اینمی جوان با تمام نیازمندی‌های های زندگی خود وقتی که پدرش میبرش میگه که اینی اراف المنام انی افبحک ای پسر من نوجوان است آغاز زندگیش است بشه میگه که ما در خواب دیدم که خدای عز و جل بر ما حکم میکنه که انی اذبه حکم که ما ترا باید زبحه بکنم چون خواب پیغمبراک است یکی از چیزهای نبوتشان است ما در خواب دیدم که بشه ایم ترا زبحه میکنم این او جوان چون میفهمید که ما بنده خدا هست و ما باید بر خداوند خدا قربان کنم قال یا ابت افعل ما تؤمر ای پدر من افعل بکو ما تو, که که ما, تو ما تو امر چیزی که نگفت که ما تعمر چیزی که تو امر میکنی ما تو چیزی که امر کرده شده یعنی چیزی که خدا برات میگه تو پدر دل سوز هستی تو دیگه چیز دلت میخواه ولی خدا میگه که نه بچه ت قربان کو یا ابت فعل ما تو امر ستجدونی انشاءالله من صابرین برای انشاءالله تعالی از جمله سبر کننده ها یافتی ما صبر میکنم و بکو افعل آماده میشه و قربانی و پدر خودمه یک لحظه تاخیر نکنی بران قربانی حقیقی است که انسان جسم خوده آماده داشته باشه برای قربانی شدن برای خداوند متعال جل جده پس وقتی که تو میگی بالا من ضرورت است احیان دشمن های اسلام با خ... بالای خاک انسان تجاوز میکنن احیان علنا میفهمی که اینمی دشمن اسلام خاک ما را گرفته و ما را غلام خود می سازه و ناموس ما را از بین می برن و اطفال و زن های ما را میکشند و عینن مثل فرعون ما را قتل میکنن و از بین می برن پس این صورت ما باید چی بکنم اینجا مسلمان آماده قربانی می باشه به خاطر از اینکه در این صورت خداوند در شبیه که خدای ما آماده هستم که حتی از جان خود تیر شوم و در راه خداوند به خاطر جهاد فی سبیل الله آمادگی داشته باشم این قربانی درجه یک است که باید ایره هر مسلمان داشته باشه آمادگی داشته باشه و مسلمان همیشه از خداوند متعال دعا بکنه خدایا مرا شهادت نصیب بکنی ای توفیقه خداوند بر کل ما و شما نصیب بکنه بنان چی هسته این قربانی اساسی است که یک مسلمان آماده است که وقتی که دینش مورد تجاوز قرار بگیره ناموسش مورد تجاوز قرار بگیره خاکش مورد تجاوز قرار بگیره حتی به خاطر رضایت خدای عزوجل و دفاع از مقدسات خیش و از ناموس خیش حتی از خون خود بگذره مثل ابراهیم علیه السلام از فرزند خود گذشت پدر مسلمان باید اولاد خود مانعی قربانی دادن در راه خداوند نشه و ای بچه و جوانی که هست ای باید آماده قربانی در راه خداوند متعال باشه این قربانی حقیقی است که یک مسلمان آمادگی می داشته باشه این حالا شما فکر بکنید که ما در روز عید قربان وقتی که می میگیم ما قربانی هست قربانی اولی باید ای داشته باشیم که غرور خود از بین ببریم و وقتی که امراه یک کسی کدوره داریم بعد داریم بگیم ما خود قربانی خداوند کردیم و قربانی احکام خداوند کردیم بناا کاملا دشمنی ها و بدبینی های خدا با مسلمان ها فراموش کردیم و آغوش خود را باز بکنن و یک برادر مسلمان را خدا در آغوش خود بگیرد و حتی وقت قربانی حقیقی می که اونمو نفر که از بریم در پشت دروازهیش و دروازهش تخ تخ بکنیم با وجودی که جانم مقابل پیش ما ملامت باشن خدا ملامت فکر بکنیم او را بگیم نه خیرس و بریم بگیم به خاطر ذات خداوند اگر چی بلامت است ما امراش پس دوستی بکنیم آشتی بکنیم و از اشتباهات ازو صرف نظر بکنیم با خیر از او چی, چی قربانی سیخو خب قربانی نیست که بر زبانت یا در دلت پیداسنم ای با باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود در روز عید یی میکنید لباس نو میپوشید عطر میزنید بر نماز عید میری لکن چیزی که از تو خواسته میشه که او دوری از تکبر و دوری از دشمنی است او را هم دوام میتید این قرمانی بزرگ است که انسان باید دشمنی ها و کدورت ها خاصیت های شیطانی را از وجود خود دور بسازه عزت ابو حرایر را دلاتانون بگه که باز میشه دروازه های جنت روز دوشنبه و پنج شنبه و بخشیده میشه از برای هر ای که به خداوند شریک ناوردن بناهایی های میشه مگر کسی که با برادر مسلمانش ادوات داشته باشه اگر تو که یک از گپ نمیدونیم قطع رابطه داری باز روزهای دوشنبه و پنج شنبه این کنورت تو سبب چی میشه سبب دوری از قبولی عبادت تو و بخشش گناهاته خود قربانی دوم کسی هم قربانی که از قربانیه که حیوانا ذبح میکنیم اینال وقتی که حیوان را زب همه کنیم تاریخ قربانی از کجا آغاز شد نخستین کسی که قربانی کرد قابیل و حابیل بودن از زمان آدم علیه السلام شروع میشن دو فرزندان آدم علیه السلام قربانی کردن لکن در قربانی از حیوان اخلاص مهم است حابیل قربانی کرد با اخلاص قابیل قربانی کرد بدون اخلاص حابیل قربانی کرد به خاطر رضایت خدای عزوجل به خاطر رسیدن به حق و قابیل قربانی کرد به خاطر های دنیایی به خاطر شهوت به خاطر راضی ساختن نفس خود بران خداوند قربانی حبیل قبول کرد و قربانی قابیل قبول نشد امروز هم بسیاری کسانی هستن قربانی میکنند بخاطر گوشت خوری قربانی میکنه بخاطر افتخار قربانی میکنه بخاطر که سردگاه تکبر بکنه قربانی میکنه علام من صاحب گوه دو نفر جنجال داره نه nee, گوه که من گرفتون 25 هزار بود تو گوه 22 هزاری گرفتی قاریسه لالایت <تصفح> <تصفح> برنده نهنده ای صورت ای نشد ای چی شد؟ تکبر شد سیالی شد این قربانی خابیلی هست که بسیاری مردم افغانستان میکنن قربانی که الاسه وقت رسپانای گشت قطار از سیر نمک بیار و بعد از قربانی فوران خودش کباب خورده میره ار رو سب در از دیگه کباب بیار سیر خورده میره و فالوش هم سایی مسکینش در دال سیر نیست قربانی از این خود با قبول میکنن بران قربانی که در تکبر باشه. در خریدن مال مال من چاق بود از تو لاغر بود مال ما قربانی ما بیست پنج هزاری بود ما گوه صاحب سی بود دو هزار خرید فلانی صاحب رفت دمویدو گذشت شای کسی برای ما منطقه قصه داره بفتم صاحب خدای پاک گفتم خربانی شما صاحب قابلیست قابلی چی دارید؟ من من قابلی پله باره باره بازرم استاد کمی می دیدی گوه یک چیزی بود دیگه او دیگه فلانی واجی صاحب یک رفته بود یک 22 هزار رو یک دونه گرفتن نفر شریک شدیم ما سه نفر سعی شریک شدیم چطور کردیم شلون کردیم قربانی خبر از این نیست که تو سیال بردگاه خدا افتخار می‌کنی برو بهترین مالو بخر خوبش به رفت و بگو خدایا به خاطر رضایت دو تا قربانیت قبول شه خب قربانی بیبی بی عایشه بی صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول اکرم صلی الله علیه فرمود فرزند آدم هیچ عملی را در روزی عید قربان دوز دشت‌تر به سوی خداوند از ریختن خون قربانی انجام نداده است. به تحقیق قربانی در روز قیامت میآید با شاخهای خیش و موهای خیش و سم‌های خیش و به تحقیق خون به مکان فرو فرومیرزد، بزرگ قبل از آن که بر زمین بریزد پس به خاطر آن خوش باشید. خب منظوری که این ثواب زیاد داره که انسان در روز این قربان قربانی بکنن و ابن ماجه از ابو الله تعالی روایت میکنه که رسول اللہ فرمود کسی که با وجود توانایی و ساعت قربانی نکند پیغمبر بست هم گفت که به ایدگاه ما نزدیک نشود دیگه این جزای کسایی هستن که مثلا قربانی نمیکنند از حضرت زید ابن ارقم روایت است که صحابه از رسول ساسم پرسیدند که ای رسول خدا قربانی چیست؟ آن از رسول در جواب فرمودن که سنت پدر شما ابراهیم علیه سلام است. اصحاب عرض کردن ای رسول خدا در این کار برای ما چی و ثواب است؟ پیانبست فرمود در بدل هرموی آن برای شما یک نیکی خواهد رسید. و گفتند در عوض هر پشمان ای رسول خدا فرمودن بله در بدل هر تار از پشمان نیز یک نیکی خواهد داده شد این روایت احمد و ابن ماجه هست در قسمت سواب قربانی خب اینال قربانی اول حابیل کرده بود که قبول شد با اخلاص و دیگه قربانی ده مثلا حضرت ابراهیم علیه سلام کرد که باز خداوند مطال جل جلو قربانی از دور قبول کرد و فدیناهو به ذبحن عظیم باز خداوند مطال بایواز اسمایل علیه سلام اخلاص ابراهیم علیه سلام خداوند مطال اونجا معلوم کرد و باز برش گسفنده را فرستاد و او را زبحه کرد خب ایک علماء میگن که قربانی مشروع است یک کار جاهز است و از میگن که چی دلیل است دلیل اولش؟ میگن که آیه قرآن است فصلی لربک وانحر از کلمین وانحر قربانی استنباط میشه که باید قربانی بکنیم و حضرت مسلم از عنا صدلاتون روایت میکنه که ده نبی صلی الله علیه و سلام به کپشین املحین اقرنین ذبحهما بیدیه میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلام حضرت انس ردیلاتون روایت میکنه میگه پیغمبر صلی الله علیه سلام دو کپش کچه میگن املحه اینه که املح کچه رو میگن که او سفید و سیا باشه و سفیدی زیادتر میگه باشه اقرانه اینه شاخدار بودن میگه خود و پیغمبر سم بعد از خود رو زبح کرد و سم با بسم الله الرحمن الرحیم گفت و کبرت تکبیر گفت و وده عریج له الاسفاحه هیما و وده که انسان زبحه میکنه میگه پیغمبر سم اما پای مبارک خدا در سر گردنشان ماند و اجماع امت اسلامی است که کل امت اسلامی به مشروعیت قربانی نظر دادند. بعضی علماء میگن که قربانی سنت است و بعضی از علماء میگن که خصوصا مذهب احناف که قربانی برای کسی که چیز داشته باشه توانایی داشته باشه قربانی بالاش واجب است خب ای که قربانی واجب میشه اول قدرت داشتن است که گفتن امو 200 در درهم شرعی را مال داشته باشه در زکات خاندن و یا به مو اندازه زمین داشته باشه یا مال داشته باشه یا مال تجارت داشته باشه دومیست که قربانی باید واجب میشه که مقیم باشه یک نفر بالای مسافر نیست ایناله شرط صحت قربانی چیست؟ شرط صحت قربانی اولیست که از حیوانات باشد که قربانی آن جایز است مثلا حیواناتی که قربانی میشن ما شما میفاهم که گوسفند و بز است شتر است گاو و گاومیش است سن قربانی رو تکمیل کرده باشه و سیومش عیداد نباشه خب سن قربانی چی قسم است بسیاری کس ها گوسفند و بز رو را میگیرن سن شمارات نمیکن از این خاطر قربانیش نمیشه گوسفند و بز باید یک ساله باشن گوسفند و بز باید یک ساله باشن و گزفند که چاق است شش هم باشه ولی گفتن شرط چیه است که اگر در بین گوسفندهای یک ساله استاد چه فرق نشه بناهن باز قربانی میشن گوسفند شش ماه اما بز از یک سال که یک روزم کم بود قربانی نمیشه شرط بزی نمیشه که حتما باید یک ساله باشه شرط گاو یی است گاو گوساله که دو ساله پورا کرده باشه پای در سه سالگی مانده باشه اگر یک روزم از دو ساله کم باشه گوساله قربانی نمیشه و شطور چی که باید 5 سالش تکمیل کرده باشه پای در سال ششم گذاشته باشه اگر یک روزم کم باشه قربانی نمیشه شرط سومش که سلامتی از عیوب است یکی ایوب هایی که مانع قرباندوخ نمیواز بعضی ایوها هست بعض که مانع قربانی میشه و بعضی ایوای که مانع قربانی نمیشه هایی که مانع قربانی میشه اول کور بودن ایوان است مثلا اردوک چشمش کور باشه یا یک چشمش کور باشه یا که لاغر باشه که از دور معلوم شده که میسید لاغر است که در دستخانهاش مغز نیست دیگه عیب دیگه که قربانی نمیشه که ایوانو ضعیب باشه که خودش را قربانگاه رفتن نتانه اما اگر سه پایش جور است که یک پایش کم کم چیز، است خدا میرساند درست است دیگه گوش بریده که گوشش قطع شده باشه از او قربانیش نمیشه دنبوری که دنبش قطع شده باشه، ای هم قربانیش نمیشه. دنبش بودیده شده باشه، قطع شده باشه، ای هم قربانی نمیشه. اکثریت دندانوش شکسته باشه، ای هم قربانی نمیشه. اما اگر یک دوسر دندانوش شکسته باشه، اونا میگن فرق نمیکنن. گوسفندی که بیگوش باشه که اصلا اجگوش نداشته خلق شده دیگه. ما چه میخواییم قسم گوسفند نهیدیم. دیگه ایوانی که نوک پستانایش بودیده باشه، هم قربانی نمیشه. ایوانه که اسپیری شیرش قطع شده باشه ضعیف شده و پیر شده بیخیه از شیر میری تو مانده گوسفندی که اصلا از اولش دنبه نداشته باشه هم قربانی نمیشه این ایوار اگر داشت باز قربانی نمیشه خب حیوانایی که مانع قربانی نمیشه نه قربانی میشه مانع نیستن کدام نقص نداره حیوان کوره جما در عربی میگن که بدون شاخ پیدا شده باشه مثلا گوز از شاخ نداره یا گوسفند از شاخ نداره بیخیچ اگر ایوان که یک قسمت کمی از شاخش از بین رفته باشه اما شکستگیه اگر به دماغش رسیده باشه بازور نمیشه اما اگر کم کم شکسته باشه از بین رفته کم شاخش مثلا سایده شده باشه او فرق اگر مریض باشه که مثلا خورده میتونه او چیت کرده میتونه اما تو مریض زیاد بازو قربانیش نمیشه خب وقت قربانی چه وقت قربانی میشه؟ وقت قربانی از طلوع فجر روز, روز قربان شروع میشه تا غروب روز سومید یعنی سه روز میتون انسان قربانی بکنه اما برای مردم شار که نماز اید خوندن میشه پیش از نماز اید قربانی نمیشه باید قربانی خود بعد از نماز اید بکنه پیش از اون اگر بکنه قربانیش درست نیست اما مردم اطراف که از که خوندن نمیشن دو منطقایی که نماز عید باز باز از هم نماز صوب دیگه که چیز قربانی بکنن قربانیشان درست است <تصفح> و اگر کس روز اول مشکل داشت روز دوم قربانی کردن میتونم میتونه و صیام هم میتونه اما اگر کس مشکل نداره باید روز اول قربانی بکنن خوبتر و بهتر است خب این که مثلا گوسفند و بز بره یک نفر است و گاو شطر هفت نفر. نفر و شتر بره 7 نفر سه نفر اون میشه و 5 نفر با تعداد زیادش هفت نفر است لکن در وقت شریکی باید که کسی شریک شدن که بفاهمن که این نیتش گوش خوردن نیست اگر نیت یک نفرش هم خراب شد در این شطور و در گاو باز خرابی میکنن خب این موضوعات قربانی رو گفته که هر سال پیغمبر سالسلام میگه در مدینه منواره هش ده سال بود و هر ده سال هر ده سال قربانی میکرد یعنی تو نیست که مثلا بگیم من سال گذشته قربانی امسال قربانی نمی یعنی اینی بود خلاصه موضوعات قربانی اگر کلم سوال موال چیز داشته باشین باز میشه او رو مطرح بکنیم لغیر زیادی من خلاص است